بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلين وعلى صحبه اجمعین اما بعد بار دیگر اینجا با هم جمع شدیم بیرمون فرهنگ زندگی در در طب قرآن و سنت تقدس در بحث اصول و مبانی خداوند متعال می‌خواهیم که بنیانگزار این مؤسسه علمی، سرح علمی خداوند قبرشو نورباران بکنه رو در علیهین بالا ببره و در میزان حسناتش قرار بده این دروس علمی که میشه این حلقات ذکری میشه لخر ما برای علم جمع شدیم برای خدا جمع شدیم نه برای دنیا هر قومی نمیشینن برای امتو که رسول صلی عليه علیه وسلم میترماتی که ما ما من قومی بلسون فی اذکرون الله ایلا و حفتهم الملائکه و غشیتهم الرحمه و نزلت علیه او كما قال علیه الصلاة والسلام هیچ قومی نمیشینن برای ذکر خدابان برای اون چیزی که خداوند برشون شم تشریح کرده مگر اینکه فرشتگان سرشتگان گرد گرد انها حلقه بزند و سکینت و رحمت بر قلب انها سرازیر بشه این جلسات فقط بحث علمی هست اون چیزی که خداوند در زندگی زناشویی از ما خواسته در زندگیمون از چند که زندگی فراتر از بحث زناشویی هست بحث تربیت فرزندان هست بحث معامله من با پدر و مادر من هست فقط این قسمت اول فرهنگ زندگی فقط متعلق به بحث زناشویی هست خب دیگه انشاءالله خداوند همون توفیق بده که بعد از اون ادامه بدیم در بحث تربیت فرزندانمونم همینطور همینطور خداوند چطور در تربیت فرزندانمون از منخاصه قبلن هرچند که اینجا ما کلاس داشتیم درس داشتیم پیرامون این مسئله صحبت کردیم ولی ان باز بار دیگر به همین سبب باز ادامه خواهیم داد بحث فرهنگ زندگی در پاسخ قرآن و سنت این طوری که خداوند در رسولش صلی الله علیه و وسلم بهمون به بیان کردن ما سال گذشته یک سری مسائل رو بیان کردیم در بحث زندگی و اونم اینکه خداوند همیشه در قرآن برامون مثال میزنه، تقریب ذهنی میکنه که ما چگونه زندگی رو با تصور داشته باشیم. برای مثلاً بالفعل مسال برای زندگی مثال سکونت و مسکن میزنه که تو ذهن انسان فورا بحث منزل میاد. و الذی خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها خب لازمه این سکن چیه این زندگی چیه این خونه چیه این منزل چیه بهش خواهیم پرداخت همچنین خداوند مثال مزرعه رو میزنه مساؤکم حرفون لکم زنان شما مزرعه شما هستن و هم چنین مثال لباس میزنه لباسون لکم یعنی چی رو گفت لباس زن لباس برای مرد مردم لباس برای زن و بحث اینجا مثال هایی که ما میزنین بحثه کندوی اصل هم همینطور چرا کندوی اصل و چی در کندوی اصل نهفته است که ما مثال کندوی اصل رو اینجا آوردیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم از خداوند همونجور که خواستیم پاداش بده به بنیانگذار این محسسه میخواهیم که این جلسه جلسه خیلی برای ماها بکنه و ماها را زن و شوهرانی طلاب حسن و کسانی که خواهند شد زندگی زناشویی خواهند داشت از خدا می کنیم که زندگی همه ماها را نورانی بکنه و نور چشمان همدیگه باشیم هم زن شوهر و هم فرزندان نور چشمان همدیگه باشیم ربنا هبلنا من ازواجنا و ضروریتنا قررت اعتنی و جعننا للمتقین اماما ما اون چیزی که در بحث زندگی زناشویی بهش نیاز داریم بحث سراتر از بحث امر تعبدی هست یک سری مسائل حالا در بحث زندگی زناشی بحث فرمان از خداوند متعال یک جنبش و یک جنبش هم بحث روانی هست او هست که شرعن بهش اهمیت داده بحث ازدواج یک جنبش تحقیق عبودیت، تحقیق عبودیت و ما خلقت الجن و الانس ایلا لیعبدون و اینس را خلقت نکردم خداوند میگوید مگر برای عبادت یعنی خداوند به اون چیزی که دستور میده اون چیزی شه عبادت زندگی زناشویی هم یک مسئله تعبودی هست عبادت. یعنی همون ازدواجی که صورت میگیره چون خدا به همون اجازه داده چون دستور خداوند هست چون خداوند تشریعش کرده عبادته خداوند گفته که ازدواج بکنی پس این مسئله بحث ازدواج و اون چیزهایی که ما باید در زندگی زن و شوहीت بکنیم، مسئله مساله تعبدی است نکنید چون این شبه مثلا همیشه فرانسو کنفرانس فرانسه داشتید این شُبه در زن مثلا صدق جوهری مثلا یه طرفه میاد صحبت میکنه فقط حق مردا میده نه اینجا بحث فقهی نیست که ما به مرد بدیم به زن بدیم اون سری نصوص و ادله که بر در بحث زندگی زناشویی هست بهش میپردازیم. اون مسائلی که مهمه در زندگی زناشویی، خداوند در زندگی زناشویی چطور از من خواسته بس کنبه اول بحث عبودیت و تشریع خداوند و خدا از من رو به ازدواج بیاریم نه رو به زنا و فحشا و منکر خدا ازمون عفاف عقاب خواسته پاکدامانی خواسته اینی که ما ازدواج میکنیم. تا اینکه که منجر به زننا نشه حقیقتش من یعنی امسال یعنی این قضیه تو ذهن من هی به عنوان یک مسئله معضل در جامعه هی دور می شدد و اونم مسئله اون که بینوان اون که سر خیابون پدر و مادرانشون در یا مادرانتون بالاخره در اثر زنا رهاشون میکنن. اگر زندگی ازدواج درش نباشه الان ما اینجا محاصل ازدواج می غبی ازدواج اینه که خداوند با ازدواج مال جلو با این امر تعبدی اونا جلو زنا و فحشا رو بگیره شما تصور بکنید اون دختری اون پسری که پدر و مادر نداره مادرش رهاش میکنه سر خیابون حالا در زایستگاه یا کنار زباله ای او رو رها میکنه اون فرزند چطور بلند میشه بزرگ میشه چطور جامعه سرش رو بلند بکنه دیگه پدر و مادرش نیست که بهش تربیت بکنم بگن این دوستیه این نمازه باید انجام بدی کسی نیست امرو نهیش بکنه چی زندگی میشه از کسی نمی میگه همین بلایی که جامعه بر سر من در ورده من بر سر جامعه در میارم همونطور که اون کسی که من رو ساخت این بر, بر سر مادرم در ورد من سر دختر مردم در میارم اون دختر چی احساسی داره کسی بهش اعتماد میکنه کسی چی میکنه. کی بالای سرش باشه؟ کی بهش بگه رو مراعاق کن؟ کسی مید بالا کرش؟ چه زندگی آتفی خواهد داشت؟ وقتی که خواهری نداره؟ وقتی که پدری نداره؟ چه زندگی آتفی خواهد داشت؟ زندگی خیلی تلخ؟ رنجش آور؟ زندگی پر از درد؟ پر از رنجش؟ که واقع این زندگی نیست پس خداوند امته به زندگی یاد بده زندگی کنید، فرهنگ زندگی که از اون چیزی که زندگی نیست ما رو نجات بده اون زندگی, اون زندگی نیست اون زندگی که با حرامه که ما لذتهای خودمون رو بذاریم با ارتباط غیر مشروع حالا چه دوست پسر بازی و دختر... دوست دختر بازی یا اینکه با این دختر اون دختر بچرخیم و این پسر اون پسر این دیگه زندگی نیست اسمشون نمیشه زندگی گذاشت چه زندگیه اون کسی که بی خانمانه بی کسی نداره. کسی نداده که دادش رو پیشی ببره خوهری برادری اموی دایی بکنید من درد دارم من رنجش دارم پس این محاسن ازدواج خدابند اگر دستور به ازدواج میده یک سری نیسی ها یک سری چیزهایی درش نهفته است که انسان شاید درکش بکشه شعورش بده شاید شعورش نکشه پس با ما خلق قل جنوال انسان لیعبودون این مظاهر عبودیت. که ما در خودمون احساس میکنیم و احساس میکنی با باید خدا برش رو بخواش گذار باشیم که زن اون کسی نیستیم که سر خیال را راه کردند. حداقل خانه‌ای داریم حداقل پدری داریم مادری داریم خیلی احساس به خودت چرا پدرم از من گرفتی چرا مادرم از من از من گرفتی چرا پدرنی رو از من گرفتی بیادت باشه خانه‌ای داری خانه مانی داری کسی داری که بهش دادتو داداتو حرف تو گوش بده اون کسی که زندگی با خانواده نداره احساسش چی میشه کی ببره ازدواج سبب تقویت ایمان است ازدواج سبب میشه انسان به خدا نزدیکتر باشه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید من تزوج فقد استکمل نصف ایمان، فليتكل الله في النصف الباطنی ازدواج این, این یادمون باشه این ازدواج باعث تقویت ایمان بشه نه ایمان نه اینکه ما قبل از ازدواج قیام و تهجد و ذکر و نمیدونم قیام داریم بعد وقتی که وارد زندگی زناشیم بیشیم دیگه پشت به خدامون میدیم چون لذت دنیا رو دارین الان چون دیگه به دنیا من رسیدیم به مراد دنیای من رسیدیم اینو یادمون باشه سبب نشه ازدواجمون از خدا غافل بشیم به خاطر اون امر عبودیت سبب تخلیت ایمان میشه. دیگه انسان روب زنا نیاره روه بیت استی نیاره. دیگه مثل اون زن نشین، اون زنی که شوهر داره، چون میگه شوهرم به هم اهمیت نمیده، مشروب میخوره، پس من میرم آتشف مو در کسی دیگه خلاصه میکنم یا ارزا میکنم، میرم با کسی دیگه صحبت میکنم، قام رو پیش کسی دیگه میبرم. بهانش به خاطر این فاحشه، به خاطر حافظ دادن با نامحرم، بهانشیه شوهرم به هم میهمیته، شوهرم فلانی فلانیه، گذار بشیم. خدا به همون افتت داد اون نقطه نقص سبب نباشه که ما و نگوهش بر سر خانواده و زندگیمون در بیاریم. شک گذار. ولی این شکرتم لعزیزن لکن. باز زباره تکرار میشه تو بحث قهات اومد. اگر شک گذار باشیم خدا بهتر و بیشتر به همون میگه و غمامونو حل میکنه. و تا و چه پاداشی در ازای این ایمانی که بالاتر می‌ره با ازای چه پاداشی بالاتر از این که رسول الله صلی الله و علیه و سلم می‌فرمایند اگر صلات مرأة و, و خمسها و صامت شهرها و فرجها و آقایت بعد دخلت من ای ابواب الجنة شاهد اگر زن نماز پنجگانه روزه مهر مذانش رو بگیره پادمان بشه از شوهرش اتاق بکنه از هر دلی از بهشت کبقاهات بهش میگن وارد بشو دل،, دل بقاه خودت هست سبحان الله خیلی مسئله مهمیه بحث تنها در نماز نیست بلکه در عرفت کلام پابدامنی بحث شوهرداری و زندگی داری هم هست خطاب اگر میگم شوهرداری چون خطاب آهرانه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در حدیث بریم که میفرماین سوال می... ازش پرسیده میشه اگر زنی اهل نماز، اهل تهجد و اهل روزه نافله باشه. نه روزه های نافله رو روزه بگیره، شب ها قیام بکنه، ولی اذیت همسایش بکنه، بهشتیه، فرمودن خیلی اگر زن گفتن نماز و فقط بکنه، روزه فرزش بگیره، ولی آزار و اذیت به همسایه نکنه، بهشتیه، فرمودن آری. اون اولی قیام و تهجد داشت. کدوم یک واجب سره که ما اذیتش نکنیم؟ شوهر یا همسایه همسایه در امانه ولی شوهر از زخم زمان در امان نیست خب چیدوری میخوام درهای بهش بر ما بشه باز بشه ما میخوام درهای بهش بر ما بشه باز بشه اینو خداون ازمون میخواد اینو یادمون باشه اگر نه که ما از شعن نماز و پایین بیاریم خیر. وقتی اینه که حق مردم بخشیده نمیشه خداون از حق خود شاد بکنه. از اون تحجد شاید بکنه ولی از حرف شوهر نه حالا بحثش رو شاید بهش مفصل قایم بردار از محاسن ازدواج و نیکی های ازدواج اینی که سبب میشه که انسان سکونت پیدا بکنه استقرار و آرامش پیدا بکنه و من آیاتهی نشانه های و من آیاتهی ان خلق لکم من انفوسیکم ازواجا لتسکنو ایلیها همه ما دختران خوشن اینجا نشستن. تو زهنشون بالاخره این میاد که یک روزی باید دنبال سکونت و استقرار باشن تا که پدر مادرونی سرشون هستن دنبال استقرار آدم باید باشه استقرار و پادشاهیشون توی منظرشونه توی شوهرداریشون توی بچه داریشونه همه دنبال این هستی. هم هممرضش دنبال اینه همزانش دنبال اینه و این نشانه های خدابنده در نقص ما نگو داشت فاحشه باشید دنبال فاهشه و زنا باشیم دنبال منکرات باشیم تو نفس ما نگذاشته تو نفس ما عفاف گذاشته این رغبت نیزی هست این چیز خیلی هست که خدا از برکاتش در قلب ما نازل کرده اید نیست نیست ما شوهر بخواهیم زش اینه که انسان رو به حرام بیاره سر به حرام بزنه این زشته این نمگه این خاریب و زلته خوشبستی در زندگی هست که خداوند بذاشته اونم زندگیی که خداوند میگه از انفوس شما از نفوس شما کسانی را زوج شما قرار دادیم این واقعا آرامش حالا میاد محاسن دیگر از زواج از بحث مبدت و رحمتی که خداوند هم ترازیر میکنه بر زندگی هم طرف دیگر بهش خواهیم ترداد از محاسن زندگی و زواج اینه که انسان اگر بمیره بعد از زندگیش فرزندانی هستن که سبب بشن اعمال نیکی برایش پای حساب میزان حسناتش نوشته بشه یعنی انسانی که ازدواج میکنه فرزندار میشه همه اعمالش قطع میشه مگر فرزندانی که برای خودش گذاشته بعد از خیاتش اذا قطع اذا مات الانسان اون عنه عمله الا من تلازه الا من صدقه جاریه و او علمی انتفع به و ولد صالح مید روله صدقه جاریه ای باشه علم نافعی باشه از انسان از خودش جا بذاره یا فرزندی صالح ازدواج وسیله اینه که ما فرزند صالحی داشته باشیم که اجر و پاداشمون دیگه این دنیا با مرگمون قطع نشه از محاسن ازدواج اینه که انسان با ازدواج حسنات گیرش میاد همون اطاعت از شوهر درهای بهش باز میشه همون لبخند زدن توی روی هم دیگر و اقتصامتو که وجه اخی که لکه بها صدقه همون لبخن زنان صدقه است چه بر شوهر چه بر فرزن چه بر پدر مادر لبخن سبب بشه این حسنا بگیر انسان بیا حتی در اون شهوتی که انسان انجام میده اون عمل بناشویی که انجام میده همونم عبادت همونم فکر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم میفرمه و فی بضع احد کم و فی بضع احد کم صدقه انسان در شهوت در اون عمل زناشویشم هم بدتریشم صدقیها گفتن یا رسول الله در شهقتم پاداشه فرمودن اگر در حرام میگذاشت گناه نداشت ارائیتون لوضعه لو في حرام اتان عليه فيها وزر، فكذلك اذا وضعه في الحلال كان له اجرون همونطور اگر در حرام بذاره گناه میشه اگر در حلال, حلال بگذاره سواب میشه بعد از این مفحص اي مقدمه هرچنگ بیش از این محاسن ازدواجه گفتم شاید این به ذهن ما برسه بیش از اینه ما فقط خلاصش کردیم زندگی برای خودش برای اینکه ما به خوشبختی برسیم به وضعیت خداوند برسیم کلیدهایی داره کلیدهای خوشبختی یک قسمتش برمیگرده واجبات شرعی کلی بحث مهم یک گختری که از شماها بخواد ازدواج بکنه از ازدواج مهر میذارن براش قبل از ازدواج خزینه لباس خزینه وسایل آرایش خزینه شام خزینه فلان و الان بهش تعلق میگیره و دنبال بهترین لباسه بهترین طوششه بهترین وسایل آرایشه بهترین ازدواج میخواد عروسی واقعا عروس باشه اونطوری که خدا میخواد این بحث اون چیزی که خدا از خواسته فقط در این مسئله خلاصه نمیشه خیلی از روان شما وقتی که برید کتاب باشون بخونی میگن بله باید شما وقتی میخواید ازدواج بکنی به پشت چشنتون رنگ بزنی فلان بزنی باید با سایل آرایش استفاده بکنی فراموش از این غافل از این که اون, او، که اون گل هایی که گذاشته میشه اون رنگامیزی که بر صورت گذاشته میشه غافل از این که ما این قدیعی اهمیت میدیم به این حدینه ها غافل از این که اون فراش اون تخت خواب نیاز به اوراد داره نیاز به ورد داره نه ورد نه گل ورد نیاز داره به اون ذکر هم بستری نیاز داره به اون چیزی که حقوق خداوند برمون تکلیف کرده در مقابل زناشویی شخص زواج میکنه ده میلیون 20 میلیون هزینه میکنه برای ازدواج ولی نمیره یک کتاب درباره زناشویی خرید بکنه بخره که چطور با شوهرش که بکنه این نیست انسان دنبال این نباشه که خدا چی ارزش میخواد تو زندگی خوشبختی که خ... خداوند داره اش راضی چه خوشبختیه زشن. انسان یک ادغاثی میکنه ولی ده هزار من، بیش هزار تا من زورش میاد کتاب بره مطالعه بکنه از وقت خودش بده، وقت به خودش میده برای شوهرش. کنار آینه بشینه یک ساعت سوراخونه نمیدونم فلان بر دهانش بزنه، یک ساعت دو ساعت بشینه ولی یک ساعت کتاب به دست نگیره مطالعه بکنه، یک ساعت پای کنفرانس میشه زورش بیار، یک صخرانی گوش بده، اونم برای چیز خود وقتی خودش قبل از ازدواج ما در این کوتوله داشتیم خاطر خوشبخش خوشبخت بشید بعد تو زندگیشون. این مهمترین چیزی هست که انسان باز باید بپردازه. قبل از اون که میلیونها هزینه بکنه برای ازدواجش، باید شوق و باج و بدونه یه رو بدانه. یک حس به شناخت و روان، خیلی کتاب هایی وجود در درباره شناخت و روان، اینکه روان هم دیگر از نوشته شوهر بدانه. حالا بعدش فوتبال باید پردا، وس اهتمام به روابط فطری. جراوات انسانی بحث بازم فراهم این ها بهش راهین پرداخت. پرورش عواطف و احس... ابراز احساسات و هم کلی سازش با حلقای این پنج تا چیز کلی هستن که تو زندگی بهش نیاز داریم و در طرقم قرآن و سنت بهش خواهیم پرداخته شناخت حقوق و وزا... واجبات شرعی و لهن مثل الذي عليهم بالمعروف همونطور که بر مرد واجباتی هست بر بدون خرید بکنه گونه بگیره اصباب مسائل زندگی رو فراهم بکنه همونطور که مرد برای خودش تکالیفی داره زنم تکالیف داره ولی رجال علیهن درجه و مردم یک درجه بالاتر داره بحث اطاعت میاد رجال و قوامون علند نسا قیومیته بحث اینکه در اضای اون حقوق و واجبات مردم یک سری چیزها اضافه داره هرچنگ گفتم اون واجبات اون مسائل که تو زندگی هست بزاییتی متقابله می همونطور که فید نسلی که فقط مانی واجبات و شما را بگیم نه، یکی واجبات هم خواهیم گفتا چه مردم چه حقایق و چه واجباتی هست که باید مراد وکلتو زندگی که اون زندگی زندگی پایداره باشه شناخت روان فلا تخضعن بالقول سيسمع الذي في قلبه مرض و قلن قولا معروفا سبحان الله انسان با مردم میگه خدا میدونه چقدر سلیقه داره در برخورد با مردم با دوست و رفیق و پدر مادر جانم عزیزم فداد بشم دوست دارم فلانه با دوستش با رفیق گل و گل بارو میشه دهانش پر از گل لبریز از تشار از بوی از خوب بکنم ولی که زورش میاد به شوهرش بگه دوست دارم زورش میاد خوب باشه شوهرش صحبت بکنه لازم نیست. که بقیه معروف انسان نازو کرشمه بده بخواد خودش میلت از توش نشون بده ولی که هرچند که اگرم نشون بده بحث عبادته چون خدا آدمون خواسته خدا خضوع در قربانا محرم من یک جوی خاصی تلات اخوانه بالقول با کی بانا محرم تا این تمع در قلبش ایجاد نشه ولی تمع در قلب شوهر ایجاد, ایجاد کردن شکنشیه که زنیدیش که در شوهری پایدار بشه این چیز جزء واجبات شرعیه جزء اون چیزهای روانی هست که باید اون زن بدونه و باید بدونه حالا این بحث گفتم در یک جنبه نیست که ما باید مراعات بکنیم در زمین جنسی یک سری جنبه‌ها بحث غیرته که مثلا خداوند ما رو منع کرده که حضور داخل داشته بشیم با, با نمحرم که, که نشاید که منجر به این نشه که شوهر ناراحت بشه برنگه این بحث خیلی مهمه بس اسماء بنتيوبات في الحديث مي بيني اسماء بنتيوبات مي بيني في الحوين السفه مي جئت اليوم والنوى على رأسي فلحيني رسول الله من من صلى الله عليه وسلم معه نفر من أصحابه من أصحابه فدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه بس اسماء مي بيني تصور بنتيوبات كرسولنا الصادق يس كل باردها جدا ثم قال إخن إخن اخ اخ ليحمله من خلفه كما انه سواله شطور بكونه طالت فاستحييت شرم كعدم حياة كعدم ان امشي مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته بياد غيرت زبير افتدام فهم نفسيات شناخت الربانه بايت انسان انزم همشيني شوهر فقط قبتم خطب شما هسين مارد انجلي سم اینسان باید بدونه شوهرش شیعی رنجه اون رنجشش را از دست ند اون سبب رنجشش نشه اینجا میگه من بیاد غیرت زبیر افتادم که شاید زبیر ناراحت بشه به غیرتش بر بخوره که چرا من همراه نمحرمه سوار شطور شدم بس شر اگر من که زن با نمحرم صحبت بکنه به خاطر این که چی؟ به خاطر این که شاید رسول الله صلی الله علیه و آله اینجاست که خطاب به زنان امهات المؤمنین که امهات المؤمنین بودند خدا منعشون میکنه به خاطر اینکه شاید رسول الله صلی الله علیه و آله اذیت بشه ناراحت بشه دل میگیره منعشون میکنه فلا تقرعن بالقول فیسمع الذي فی قلبی مر و قول فولا مع فقلنا قولا معروفا همینش بینیگی سخن دیگه بودید ازدواج وقتی میگی محل سکونته و سکونت و آرامشه و مثال منزل و میزنیم برای زندگی برای چی خداوند من مثال منزل رو میزنه و میگه و من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها اگر اینجا باد بیاد بیرون نشستیم سرما بیاد بارندگی بیاد رعد و برق بیاد طوفان بیاد تنام داشته باشیم کجا میریم توی اتاق زیر اون پناهگاهمون توی اون اتاقمون میریم زندگی پناهگاه. کسی درزتی نیاز داخل پنجره داشته باشه بالا و طوفان توش نیاد باران توش نریزه انسان آسایش داشته باشه زندگی یعنی آسایش همانطور که منزل محلث سکونته آسایش زندگی خورد کردن گلدون خورد کردن یخچال گفتم فکر نکنید فکر نکنید که ماها تو زندگیمون بیست میگیری فکر میکنید چون من اینو میگم پس من بیستم تو زندگیم خیلی از ما هم اشتباهات روح رخ بده انسان در مقابل خدا من سر نماز بیسته رسول الله صلی الله علیه و آله میگه از ده یک از ده دو، از ده سه، از ده چهار، از ده پنج اینم هم حد زیادیه. انسان زیادیش تو نماز پنج بیگر از ده. توقع داریم تو زندگی زناشی 20 بیدیم، بیش نمیشه، ولی که باید تلاش کرد. شاید انسان اشتباه ازش تر بزنه، ولی که این خدا من دوست نداره اگر از موسی اگر زندگی ناهنجار شد، آسایش ازش رفت بزن بکوب شد، کتک شد، فش شد، فزیه شد. این خدا دوست داره دیگه وقت دنبال سرپناه باشی این زندگی یه سرپناه مون نیست آسایشمون نیست آسایشگاهمون نیست بلکه این درمانگاهه وجود انسان توش درد و مرض و شکنجه داره دیگه آسایش داره انسان با دیگه از اون منزل با ترا بکنه اون دیگه جایی که انسان با توش زندگی بکنه پس سکونت و منزل واس بدونیم که خداوند وقتی که مثال منزل رو میزنه چی از خاصه؟ همسران رسول الله صلی الله علیه و وسلم رفتار رسول الله رو مراعات می‌کردند حدیث شما می‌بینید حدیث عایشه و همچنین ام رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش هم مراعات می‌کرد یعنی بحث متقابله هم زنان زنان صحابیت مثال اسماء دارین هم خود رسول الله صلی الله علیه و از اصحاب همسرش میدونه رسول الله فرزانه که همسرش ناراضه این خب میدونه وقتی که توی خونه میاد چهره همسرش رو تو هم میبینه هاش تجوهت شده وقتی که میبینه شلح زه میبینه همسرش رو دیگه خب یکی پیان برد نیست خون شوهر تو زن همون چی میاد اینجا دیگه جای آسایشگاه آرامشگاه نیست اینجا نیمده به خوابه اینجا باید الان که یا خوشی یا یه چیزی فقط باید بشنوه اینو باید باید بدونی ما از رفتارمون از برخوردمون میتونیم تشخیص بدیم که چی میگذره ما باید از چهره های همدیگه تشخیص بدید باید از چهره همدیگه ذهن طرف و مقابل رو بکنیم. ولی خب نه همیشه بحثش به بدی الله بخش بالاتوهات مفصل قوالیمند رسول الله صلی الله علیه و آلهش میکنه رسول الله روز میگه بهم گفت که من میدونم که چه موقع خوشحالی چه موقع خوشحالی فرمودن چطور یا رسول الله؟ فرمودن بله وقتی که تو ناراحتی میگی لا و رب ابراهیم به فروردگار ابراهیم قشم میپوری ولی وقتی که از من راضی هستی میگی لا و رب محمد میگی فروردگار محمد قشم میپوری از لبزش رسول الله صلی علیه و وسلم میدونست چه موقع آیشه ناراحته و چه موقع آیشه خوشحاله از الفاظش میدونست بعد آیشه بیگه از اون وقت که تصمیم گرفتم که غوان شوهرم را رنجش ندم بحث متقابل گفتیم بحثی که رسولا انتقاد میکنه، کنه ای خواهد. شما در مقابل انتقاد نصیحه سینه باز داشته باشید کشت نیت رو در مزرعه خودتون بکاری در قلب خودتون نیتی را بگیرید مثل زنبور اصل باشید از اون تلخی. آثار اصل را بگیرید. شاید تو ذهنتان خیلی بددی ها باید ولی که مثل زنبور اصل خوبی را بگیرید یادتون او زنبور اصل ما مثال زدیم. اصل خوبی را میگیره. گل نبول داره بعضی گل ها بود دارن نه همه این گل ها. گل نه داره شما گل را بگیرید تو دهن خودتون بود بود داره؟ نه. ولی که اون ما هستیم که از اون گل از اون شیرینی زندگی از اون زندگی که خوشگه خوبی را میگیریم بلند میکنیم. و می کاری. خوبی ازمون بباره نتیحت رو بکاریم در قلب خودمون نه اینکه با خشت اگه گفت به شوهری به زنش گفت جانه اینجا بندر می بهش گفتی خانمت گفتی هجاب تو مراقبتون فرام به چی میگه دلبری این دلش زنده این دلش فلانیه اینطوریه فرام بهش میگن تنه تو دلبری بابا جان این غیرت این خدا قصه. شوهرم هم اینطور اگر مثلا برطرف خاله مش بهش گفت نگنا نکن هر هر محرم نزن نباید اون مردش بر بخوره داد و بیداد بکنه بگه چش و این من الغیره ما يحبه الله از خدا دوست داره و این من الغیره ما يبغضه الله از خدا خش داره بعض این مسئله بعض دوره کاهد ما بعض از غیرت از خدا خش میبره براش خدا دوست نداره ولی این غیرت خدا دوست داره نه اینکه فوراً تو ذهن تو تظاهر بکنید این چون به گفته دل بده و نراحکه این بحث بحث متقابلیه که هم زن باید مراقب بکنه هم مرد باید مراقب بکنه و ما زنبور اصل باشیم که نیکی فقط از من سر بزنه نه بدی و خار و دیگران بزنیم خوصا به شوهر که اذیتش خیلی سنگینه احتمال به روابط ارتباط پتری نسا اکم حرکن لکن فقط حرکن ام ناشئتم زنان شما مزرعه شما هستن ای. می‌داریم، نداریم، می‌داریم، خوبی می‌داریم. کشش خوبی‌ها می‌کنیم که فردا روز قیامت درو بکنیم. گفتیم، نه صدقه. گفتیم، کوتاه اومدن که زندگی برای استقرار زندگی، خوردن خش فرو بردن خش برای استقرار زندگی عبادت بود. خوشنودی خداوند درش چون خدا دوست داره که زندگی متفکر بشه، نه از هم متلاشی بشه. خدا بغض تلاش کردن اون چه که دوست داره رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید ابلیس عرش خودش رو بر روی آب گذاشته دعوت میکنه چکار کردی چیکار کردید اینو آغوش میگیره اونو آغوش میگیره خدایی میاد بازم همینطور یکی میاد آغوشش میگیره چه با آغوشش میگیره رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید ابلیس به خودش مینازه اونجا میگه بله تو هستی که حرف منو درست گوش داری تو هستی کار بهترین کارو کردی چه کاری؟ بین زن و هر تفرقه انداختی خدا دوست داره یا ابلیس دوست داره ابلیس می‌خواد نه خدا ما با دوباره رضایت خدا باشیم خدا دوست داره درسته ان از قدر حلاله عند الله تعالی حدیثی ضعیفه بلكه این حدیث می‌ذارش برداشت کرد که خدا پایدار زندگی ازش ازمون می‌خواد یه کشتی باشه پایدار اجر و پاداش تو ابد درمون ببونه نه اینکه کشتی باشه که بتوزونیم اون کشتمون با سلاخ جدایی اون کشت اون مزرعه وقتی که انسان میکاره وقتی که من میام مزرعه رو سحق میدونم دانه رو توش میذارم آب نیاز داره زندگی فقط این نیست که انسان شب با هم دیگه بخوابه صبح که بیدار شد ان لله و ان راجعون اون ارتباط فطری و عاطفی از بن بر ارتباط فطری فقط کاشتن فرزند نیست کاشتن محبت کاشتن خوبی کاشتن احسانه کثرت عبادت عبادت شما از مدریه ای که ما نمیگیم و مثال بزنید و خدا بهش اسم سازنده مساعکم حرز لکم امات الان یاد ذکر داره نیاز به مراعات داره نیاز به پرورش داره نیاز به اهمیت داره این نیست که ما فکر بکنیم چون ازدواج کردیم تمام شد رفت نه شما می ازدواج بکونید گفتم همون طور که 20 میلیون 3 میلیون خرج ازدواج می با خرج حزیره کشاورز بکنی که چه با تو زندگی بکاری نه اینکه شکل مردمانی رو پر بکنی با 10 میلیون خرج هتل و خرج غذا و شام بعد تو خونه پول نداشته باشی بعد تو خونه فرش نداشته باشی بعد تو خونه فرش روی خواب روش, روش بخوابی نداشته باشی چه این زندگی نیست شکل مردمانی که پر کردی تلخ بود شور بود شیرین بود خوشمزه نبود رضایت مردم اون چیزی نیست که ما بهش برسیم و نمیتونیم هم بهش برسیم اون چیزی که ما باید در ازدواج بدونیم چون عبادت باید رضایت الله رو در نظر بگیریم سبحان الله همیشه انسان مشقت عبادت برای خداوند، به بپادک سادن در شب‌های های رمزان پنج ساعت تحمل دو ساعت سه ساعت برای خوندن قرآن نمازه پنجر از خوابش میزنه بلند میشه ولی فراموش میکنه که زندگی زناشویه هم عبادت و سرخشه که اونم نیاز داره که این یعنی اون زندگی هم نیاز داره که محکم بشه درهای وصابه شیطان باز نشه چون شیطان بس میندازه. میگازه شیطان دردغه میندازه. شیطان نزهات داره چیزان این حراس ذهن ما چوهرمون نمیذاره دست به موالش بزنیم به خودش چی میگه اون خواهر آه کاسه ای زیرین این کاسه هست با کی ارتباط داره با کی پیام میده دیگه میاد تو تجسس تو تحسس حساس میشه این تجسسه این تحسسه این وطبسه شیطانه نظرات شیطانه تو کچه و خیابان دی که یک زنی میاد میگه شیخ سالی داره مزید. تو بهش بر میخوره. مثلا به یا اون شوهرش یه همچین سخی سلام عليك میکنه چرا با اون زن سلام عليك کردی اون اون زن دیگه به بر برمیخوره یا دکتر خالشه یا دکتر اموشه. زن میزنه سوالی داره مشکلی داره ما باید کنترل بکنیم زن شجاع اون نیست که منفجر بشه رو در, در درون خودت منفجر بکنه توی دی اون دیک تو قلب خودش خودتو میشکنی خودتو خورد میکنی خودتو میسوزنی خطاق سرازیر بشه از این قلبت خودت میپذی خودت میسوزی نسوز کنترل خودتو بکن خشمی که شیطان بذاشته هایی که شیطان بذاشته حقیقتم باید داشته, باش، داشته باشه ولی بازم خدا من ست رو قبصه بازم خدا من سب رو قبصه مثلا برای خدا من ست رو... برای مثلا بحث زنا اینکه اثبات بشه روی شخص به خاطر که شخص آبروش نره میگه چهار تا شاهد اگر سه شاهد منو بهترین اشخاص روی زمین ببینیم, ببینیم ما باید اشتا زرار شملاق خورده دشیم. چرا؟ چون خداون خواست تا بشه باید چار نفر ببیننم واقعی زنا خدا از ما تجسس بکنیم زن زیرت زن باهوش اون زنی نیست که به خودش بگه من میرم بیرون میارم این با کی داره من میرم پی میبرم من میرم بیرون رسواش میکنم من آبور بردم کار مؤمن نیست ست کار مؤمنه همونطور که خداوند ستی ستیره همونطور که خداوند عفو و غفوره خدا ست رو میخواد شجاعت در خش نیست در منفجار نیست شجاعت در کنتروله شجاعت که خش به خودش رو کنترل بکنه این شجاعته که ما توش کم میاریم منم خودم اولیش بده نکنید من پیامبرم اینجا نشستم فکر نکنید فرشته یا فرشته خدا اومده اینجا من تشکیل میشم من نواحت میشم منم شدا بیرون میاد ولی که توفیق خداستیه کنترل کنترل احساسات کنترل عواطف کنترل خاش اینو خدا هست متواسه صحابی میاد میگه یا رسول الله نشنسانگو لا تقوا گفتنا حسين كن گفش تقلب گفتنا حسين كن چرا نشو نشو تشخیص تشخیصنمجوری ناراحتم سوری نیاه ناراحت خمپاره رو به دست بر بداری؟ داد و بیداد بکنی توی خونه سرو بکنی در رگوار کردن و در همسایه زدن و به فدر و مادرش تماس گرفتن و خواهر رو همه در جریان گذاشتن خیلی آرومی با آرومی اصلاحش کن با آرومی اصلاح کن چقدر راحت آیشه حیات رو پذیرو راهات کاش تو خودش نتیه، نسیح. نتیه تو خودمون بکاری. اینو خدا ازمون قول. این نتیه تراث اله، نتیه مانیس، خش بین نشی. برایشی ای باید زلزله نیاد. این خونه سر جاش بیفته چون خش زلزله هست. خودرو می تاکند. سعیش کردند بپاشه. خدا نگاو کنید خیلیش کارش با مکارش با مهلت، خیلیش کارش با خبره. کاملا نشون می‌ده که چقدر مهلت داد. نه در میان کامه چند تلفیف؟ شکنجه چند نفر فقط از سیروی کردم 950 سال تو قرآن گفتید دیگه درست کی میتونه شکنجه را 900 سال بپذیره تحمل بکنه یک سال دو سال یک روز مواد و ویداد مونده ولی ما پیامبر نیستیم نمیتونیم ولی تو عنوان الی من هسه ما, ما باید بتونیم باید تلاش بکنیم باید همت بکنیم تو خدا از اون فایده داشته زندگی مون فایده دار اشتباه سر میزنه از زن از شوهر سلط میزنه ولی که نوع درمان مهمه افشاگری فاره مؤمن نیست بحثش دوره قهدو من پرورش و ابراز احساسات خلق من و من آیاتی انخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو ایلیها وجعل جعل بینکم مودتا و رحمه خداون از هاش اینه که از همسرانتون محل سکونت را برا شما کسی که همجنستون که احساس این مثل خودتون که در سنارش آرامش یابید و جعل بینکن مبدت و رحمت یعنی بین شما مبدت محبت بذاشته بچی و رحمت مبدت چیه رحمت شيه. سبحان الله بعضی زنان شکایت میکنند جلایه میکنند شوهرم مرا دوست نداره به من ننیگه بیست دارم زنی داد و بیداد میکنه من این سخن خوب و خوش این ابراز احساسات در شوهرم نمیگیرم. شوهرم از نصف ابراز احساسات نمی کنه. طون خشن و این و اون. ماده من اینطور میاد چقدر میکنم خیلی از طرفدارم میاد میگه خانومم بده بد اخلاق یا فلان. دوستش ندارم یا زشته یا اینکه به من نمیرسه هزار تا بهانه میاره. دنبال بهانه تراشیه. خیلی بده. خیلی بده که انسان دنبال بهانه باشه. زشت. شمسار برای انسان که انسان بیاد اذیو باشه، دنبال اذیاب باشه، ایبها رو آلام بکنه. این خدا از ما نخواست. خدا درست از ما خواست که مبادت باشه، ولی که اگر مبادت و رحمت و او اگر مبادت و محبت راست، مبادت کی یعنی محبت؟ اگر راست قسمت دیگر رحمتش کی بوده مونه؟ تلاق قاهلی یا شوهرم رو دوست داره یا شوهرم حبوب روی سرم رو بورده. یا که من کارو کرده، ببخشید اگر محبت کم شد. اگر محبت از بین را قسمت دیگرش رحمت که هست فرزندی که برات خدا گذاشته اون صدقاتی که برات گذاشته همه لبخندی که تو صورت شوهرت می‌زنی، این رحمات خدا را فراموش کردی می‌خوای این آسایش این منظری که سکونته می‌خوای از دستش بری با قاطعی که شوهرت رو دوست داره خودش باید بکشه خودش باید عذاب ببینه خودش باید درد بکشه توقع نداشته باشه که همسرش رو دوست داره همسرش بهش خوبی بکنه ولی اگر خوبی کرد تاداش داره موسیقی آمد رحمت همچنان باقی سواق همچنان باقی بی محبتی راه حلی نیست برای جدایی. اینو ما نباید توقع داشته باشیم تو زندگیمون هی به فکر طلاق اون رسول الله صلی الله علیه و فرماید اون ذری که بدون عض بدون سبب از شوهرش طلاق نمیکشه به ایک برس حرام میشه چرا؟ چون روی حرف خدا داره حرف میزنه خدا یه داده به مرک ما باید کنترل عواطف رو خودمون بکنیم بعد این غیرت و اون نعمتی که خدا داده باید شد باشی باشیم خدا به بباس هر تناهی یاد زناداده که نشدیم بیت و مادر که نشدیم حد دقلیق سخت یک فرزندی خدا نمیداده خدا یه شد شکر گزار باشید که ای شکرتوم لذیدانكم کفران نعمت نکن شکر گزار باشی مثل کی اون زنانی که خداوند مثال زد برای تمامی این برای من مثال فرد. بخاطر بخاطر بخاطر كامل كامل من مثال زد به شکر شکرت پاسش نه به خاطر ناسپاسی به شکر شکرت کامل شد برای رسول الله میگه چهار نفر از زنام کامل شدن و می تونن زن دیگه کامل بشن یکی از اونها آسیه یکی از اونها همسر فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتاً في الجنة مثال من الجنة فرعون حبر تحملش در مقابلة ان جنايتها ويقتلوا ابناءهم ويستعي نساءهم هر زنده شير خواهر دست مادر ميقرب ميكوش سرش ميبوري إن قد جنايتها دو بل ان زند سفاس كذار بوت ترورددار رضاية خودت نفهم ترورددار قشندي خودت ربطی نی عندك بیته الجنه اريد ايش في قام دست به دعا برداشته نه دست به دادگاه و نه به شکایت و به گلایه کردن و به این در اون دست ببخشید فکر میکنید همسایت است فکر میکنید برادر و خواهر دلسوزت تن تو پیشش میبرید باور میکنید نیست باور میکنید حسودت تو حسادت از زندگی گیرته خیرخواهی خوصا تو خریبیان خیلی کن اعتماد به کسی نکنی بقاطر همین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوابی مثلا دیری فا اون کسی خیلی بشت اعتماد داری دوستش داری دیدی خوشحال میشن که تو بنادی خوشحال میشن که تو بکشی تو خودشو میتشن چون خودشون درد دارد دادتون دردتون پیش خدا برداری نپیش مردم دست به مثل برداریت کمک از مردم نجویی کمک از خدا بجویی خدا یا پروردگاه را مشکل هم حل کن پروردگاه باور کن انسان شرمنده میشه در مقابل خدا سلیمان علیه السلام میره به بیرون میره به دعای استسخان مرچهی را میبینه مرچهی را میبینه دستانش را بالا برده اونجا شرمنده میشه سلیمان میگه بر بگردید ارجعو فقط سوقیتون به دعای غیقی کن به دعای خودتون استجابت شدید مرچه ها داشتن دعا میکردن با شرمنده بشه مرچه دعا میکنه ولی انسان دعا نمیکنه چی میشه؟ فرزنده مشکت نلوش فرزندش، فرزنده تماس نکن قبل از رواد بشید فروردگار را دو سرم اصلاح کن فروردگار رو دو سرم اصلاح بگن فروردگار را شوهرم اصلاح کن این فروردگار این بار اله ها چرا سر زبان ما جاری نشه چرا در متوصل با خدا نشید چرا به رحمت خدا کمک ندیلیم فروردگار تو رحمان و رحیمی از رحمتت بر قرب شوهرم نازل کن چرا ما هید بیتابی بی کنیم بستر از تو کتی تو دن که بدترین زندگی، شکرنج این زندگی رو رسوا علیه وسلم کشید. فاطمه تو عایشه میگه سر رسول الله روی فاضل بود، روی فهام بود. از سب فهم داشت میگفت، سب رسول الله. کوسه رو که رسول اللهی بود، آب سرد رو سرش میری. نمیشه بلند بشه نماز بخونه، نش میاد از سر زیاد. یا رسول الله، این که انت فهمی تو قنبله. قسمت درایی، فرایت، ادیشم دوباره برایه، فرودن بله، هر چقدر انسان به خدا نزدیک‌تر بشه امتحاناتش سخت‌تری می‌زاره. نیزه میخوره بر سرش سر شکوک می‌یابه. فاطمه رضی الله عنها. فقط آتش می‌ذاره میذاره توی سر رسول الله فرو میبره خون بندشه. این شکنجه این درده این که انسان بیرون بکنن، از دار و ندارش از, از ازش بگیرن، این بلاست، این مصیبت است. نه به پرخاش یک فرغاش، چورنت به دیجاست. داد و بیداد و فریاد راه بی اندازی قیامت و قیامت بکنی. خویشرا را از صورت محروم بسازی رحمتی که خدا به داشته که خدا به داشته به خاطر کمبود محبت آتش مشونه خش رو برپا کنی اینو خدا از اون نخواسته این خوب نیست آتفه ها باید پرورش بشه احساسات باید ابراز بشه پرورش این احساسات به خاطر تایداری زندگی است خدا با میکنه لقد رضی الله عن المؤمنی ادیو بایعونه که تحت شگره خدا اعلان رضایت میکنه خدا توفیق ازدواج به امون میده نباید شبگذار باشیم توفیق این عبادت را خدا به داد این رضایت را در خوشنودی را در ازای عبادت خدا بهشون داد ماها هم خدا توفیق اززواج به نبا تلاق داد نباید شبگذار باشیم بلفردن طلاق داد طلا جاهای انسان باید شکرگزار و سپاسگزارش باشه. شخصی میگه من استخاره کردم، ازدواج کردم، بعد طلاق گرفتم خواهر، طلاق گرفتی. بدون خیریت توش بوده. مادام که گذشت، ایتاش قبل از اون که بیاد مشورت می‌گیری، استخاره بیشتر میکردی حتی که شاید همون طلاق بالفرض استخاره کردیم مشورت هم اون اونم شده مصلحت ماها هست. اینو بابا بدونی باز شکرگزار و سپاسگزار خدا از یه طرف خاله خدا هم از طرف دیگه است لا یشکر الله من لا کسی که فقط از مردم نباشه فقط صدا خدا نمیدونه باشه مردم هواد ازش است هر چن که نباید ما توقع داشته باشیم زنی میگه من بهترین لباس رو شوهرم میپوشم بهترین آرایش میکنم هیچ چیزی تو خونه ازش کم نگذاشتم بعد آخر شوهرم به بدی جواب میده تو خونه نمیاد بهم به سر نمیزنه و فلان و فلان میاد داد و بیداد میکنه اون زن این توقع داره تو زندگی سبحان الله عبادتی که تو داری انجام میدی پاداش دنیا ازش میخوای نماز میخوای توقع داری که ماشین بهت بده توقع داری خوبی بهت بکنم خیر از موسی یادت بیگیری موسی علیه السلام وقتی که اون دو تا دختر سنگ روی سر چاه بود سنگ رو برداشت به خاطری که اون دخترا شرم سر نشن شرمنده نشن فوراً موسا سرش پایین من داخت رفعی ای که تو نفس خودشون احساس نکنن موسا و شک و سفاس داره در مقابل خوبی که می کنی سفاس گذاری که نداشته باشی شوهرتون بیاد فقط گل بهتون بده بیاد دیگه دوست دارم بیاد لباس خوبی کنشی بیاد فوراً شوهرت بیادتون بگه به چه لباسی روت اومده شاید دیگه شاید نگه انسان گفتم از نماز انسان یک از ده میگیره دو از ده میگیره سه از ده چهار از ده پنج از ده دیگه این حد آخرشه دیگه بشرتی نسان نمیتونه خوش روز میتونه داشته باشه تو زندگی هم همینه فراز میتونه ده از ده بگیره شاید یک بار یادش باشه شاید دو بار یادش باشه شاید سه بار ولی نهی که همیشه شما طبقه داشته باشید در مقابل نیکی که اگر برای خودتونه. اگر کردی بله این شکردون لعبیدن نکن سپاس بدایی کردی برای خوده اگر شاید کرد برای خودشه اگر نکرد و بالا گرده برای خودشه محروم شد یک ساعتی از دستان این طوری هست که زندگی پایدار میشه احساسات پرورش نیابه با ابراز این احساسات عاطقه پرورش پیدا میکنه زندگی زندگی پر میشه یک پر از گل پرست گیاهان خوشبو میشه نه از خار نه پر از گل پای انسان بره بیرو... توش بره بیرون نیاد یک مشکل پیش میاد داد و بیداد میکنه بعد نمیتونه خودشو بیرون بکشه زندگی نباید اینطوری باشه زندگی باید بستری ساده بستری صاف پر از کشت پر از نیکی باشه بد را باید کافت از اون مطرعه باید تلاش بکنیم، گفتا، باید تلاش بکنیم، قرار روید ما بیست بگیریم بلی بخص بحث این چیزی که از رضایت خدا چطور ما میتونیم ابرازاتمونو احساساتمونو ابراز بکنیم؟ شاید دیگه صوبت کریم؟ ده دیگه صحبت بکنیم، دیگه فکر نکنم که بتونیم بحث داریم بینیم شب آیا دیم، فکر نکنم بازم تمام بشه فلاں اعلام شده دو شب شد شد. فردا هم هست احتمال زیاد احتمال 90 درصد در در شاد میاد به دیشم یا شاید هم چارومم هم پیدا هم بکنیم در بخش حل مشکلات الله خدایا من توقف بده بتونیم از این مسئله این ماده ای که تاثیرش به دوش خودمون زندگی و فرهنگ پیش بر یعنی گفتم نصوص بغضیش میکنین در بحث قرآن و سنت ابرازات یا به احصاطاتی گونه باید ابراز بشه چگونه باید ترورش بیاده با احترام و تقدیر لامپی تو خونه می چیزه. یک ماه دو ماه میره کسی نیست اون رو تعمیر بکنه شوهرم بیاید اینا نه یا ای زخم و زباق بزنید شوهر؟ به تو شوهر دیگه؟ نه؟ نیاز من رو نمی بینی؟ چقدر اون من به یه حالا چیه؟ نشبه بشی داره نگاه بکنه؟ یک لامپ سوخته چند سال هم سکونه هست؟ بیست یکی سوخته. این تقدیره؟ این اخترامه؟ یک بار خشکی میشه شب روز با هم خوشبش میکنن سر سفره میخورن با هم بیرون میرن یک روز شوهر نیناله میاد خشکی وارد کنه. ای زن تو چرا این کارو کردی؟ صدا تو رو من بلن میکنی رو تو تحقیق میکنی تو جمع مرا تخریق کردی تو من رو دوست داری این زندگی که سوخت، آتش که آتش بیر زندگی باشه برای چی؟ 24 ساعت 5 دقیقه به جایی که بیاد آب بریده هیزم از این بر جمع میکنه هیچ اکاش هیزم بود نه بنزین خواهد دیگه زندگیش قسم میخورم میخواهد زندگیش دیگه به میرو نه پس دنبال آب باش دنبال رو حل باش زنگ بزن به شیخی زنگ بزن به علوی نه به حسودت همسایت نه به پدر و مادر هست دیوانه اون خواهری که زنگ میزنه برادرش دیوانه هست که به مادرش میگه دیوانه مادر یعنی آتش یعنی نفت و بنزین چه دادا میگه مادر دم سوزه مادر خار تو پاش میره دادو بیداد میکنه بی خار تو پاش میره خار تو پاش, پاش نه بازم بگی دردتو پرمان بکن بچه چون بچه داری دیگه بچه وقتی که دادو بیداد میکنه بی نیاز می به شیر داره آب تو کنیس بریزید آثاری که میذاره توی دهنت بچه با شیر قاله میشه کبشو کسر کردی نمو با اینطوری این نیست بچه شیر میخواد شکمش درد میکنه هر که با حل داره؟ سپاس داداری فقط از این نیست که انسان زبان شکر از دهنش بیرون بیاد دیگه سپاس شکر همون عمل و کردارنی تو خونه خوب رفتار کردن با فرزن خوب رفتار کردن با شوهر بزرگتری تقدیل برای شوهر چون شوهر نمیشنه، شوهر میبینه طبع شوهر طبع مردا من گفتم باید بگیری روان شوهر رو باید بگیری مرد میبینه زن میشنبه که زن جایی هم میبینه ولی که مرد بشتر میبینه مرد گوشش اگر داد و بیداد کردی فردا میاد تراموش میکنه بسید چیه نشده چون مرد میبینه داد و بیداد کردی فردا باید بوسه زدم کل غم و اندوش اون مرد ترابوش بیکنه ولی اکاش اون زن بیادش باشه بوسهی بلهتاره نه اون زن باید دنبال تیزون باشه باید آتش بیمعرفتی باید باید بکنه. این دردن دارم میگن این حاصل زندگیه خاری تو پاتون رفت تو زندگی نه که خار بره چاقو خورد تو پاتون پدر و مادر درسی زن تو رو با درسیزیشون می سیدوند شیخی آلبی حتم بیاری خشمو بخوابانی ادامه مدید زن و شوهرم با هم اختلاف می حاضر نیستن که مسئولت از یک شیخی از آلبی از یک شخص رو فهمیده بگیرن همونطور همچنان ادامه دارم می خشم و غذبشون همینطور این بی این می پره این بی می پره این گلدگی بر هوا میده. این اون گلدون اون بر ربا میده. این دنبال آب باشی دنبال آب آتش خاموش بکنید نه برپا بکنید احترام و تقریب این دو کلمه رو با هم نوشتم یک دو سخنی نرم تو و قل عبادی یقول اللکه هی احسن بهترین ها را بگن احسن نگف حسن گفت احسن بهترین ها همیشه تو حرفاتون بهترین ها را بگید احسن را بگید میگو ترین چرا؟ این شیطانه این زغو بینه شیطان نزغات میاره معاذب حرفتون باشید قس ندارید توی دلتون میشی نیست میگید امروز غذا شروع شده تو که غذای من بیست اصلا چه غذای من به حال خوب بوده خوش بوده یک بارا شب روز اون مرد بنده خدا سرش با این انداخته میگه عجب قضایی یک بار اون قضا تلق شد شور شد این مرد بنده خدا تعبیرش ناشایسته دلشت دلشت چیزی می بنده خدا ادبیات نداره ادبیات زیده سخنی نرم، بود نیتو احسن بهترین ها را بزه. من میگم به خودم توصیب میکنم اینجا دیگه به خودم برگردوندم ما باید یاد بگیریم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتعلم علم وتعلم بديوتي ما بديوتي هذا الخدام الناس في هذه بكونا ميجوا شو وما من إنجاب هذا هو ودان هذا الناس في هذا من تيجي تقولين إن جاب فريستيكان وودي كان على ثبانين السودان نمونه‌ی سر و تحمل، شما در زندگی اصلی اسماعیل علیه السلام بینید. اسماعیل علیه السلام، دستی که می‌ری بیرون، ابراهیم میاد توکنه سر بزنه. همسرش میگه زندگی میاد ابراهیم سر میزنه میگه شوهر چطور آدمیه؟ نمیشه همسر اسماعیل میگه زندگی چطور؟ زندگی من نه آو؟ هیچی نداری. دادمونو پیشی ببری. هیچی نداری. بعد گفت که ابراهیم اومد دو که پاشی داره اون چارچوب درش عوض شو گفت بکنه گفتش آش میاد برگش اسماعیل دو که چه خبر گفت که برای یه مردی میاد گفت که پاشی خونه عوض آغاز کنه دو که برای تو طلاقی برو پدرم این اینجا یه دوستی من طلاقت بدم میگو زنی دیگر میگیره بعد دروغی میاد میگه زندگی که دیگر من بهترین زندگی بهترین شو هردو دارم ولی این شکستم دادی میگه که که شوهر که این که ها تو بدر رو نگه بداره میگه بله بعد اسمایل که میگه پدرم این از من خواهد سب تحمل زندگی در مکه تک و تنها ابراهیم حاجر رو رها میکنه بعد اسمایل بزرگ میشه تک و تنها بعدم هم میگیره کسی هم ندارن اونم تو زندگی صحرا و بیابون تو خونه توی خیمه یا توی تنگ و گل زندگی میکنن الان بهترین مو بهترین فرق بهترین یحسان که و ظروف و ظروف و نمیدونم وسایل آرائش و لباس داره من ندارم من بدبختم من دادم تو شکی ببرم سب داشته باشید قرار مید قرار مید شما تحمل عبادت را میکنی سر نماز میسی خیام و تحجد میسی توی نمازون چی میشه ایسان تو زندگی باشه. تحمل سخيروا بكل كذب خذ هذا من خاص والعز إن الإنسان لا في خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل الحق وتواصل الصواب والعز قسم بالزمانين كخبي وبدت مشهد خذام يقول قسم يقول يعني أمر مهم بيتقيه إن عدوات التعين دي أرضي بيتقيها مأم أمر بدوره يعني لا في خص لما تعليل خص لنا كراهش شو أثر عدوات به درستی که انسان در خسوران زیانه اگر کی نباشه اگر ایمان نیاره اگر عمل عمل نکنه اون ایمانش حدیثه عمل نمییاره ثوابی به حق نکنه ثوابی به صبر به حق نکنه دعوت نده به دیگران نمصیحت نکنه مسئولیت و انجام نده به دیگران در خسوران دیوانه ثوابی به صبرم نکنه خودش رو ثبار نتونه، ثبوت نتونه تو زندگی بدونید که شخصی که ثب نمیکنه در مقابل قضا و قدر خدا در خسران زیانه چرا خودمان بچه بار از من گرفت داد و بیداد میکنه کنه خب رسولان لعن کرده گریبان بشتافی رسولان لعن کرده بر سر صورتت بزنی شوهرش می میره، بچهش می میره زندگی ثب میخواد، بچهت مریض میشه، بچهت بیمار میشه شوهرت می میره، بچ انسان در خسران و زیان، اون انسانی که صدور نیست در مقابل تقدیرات خدا میخواد امتحان بکنه از تمامیت برام میگه فکر حدید ما اینجا هم الین فرشتواز بزنگی بکنیم مصیبت نبینیم و لنبلوانکم بشیئی من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفوس والثمرات امتحانیتون میکنیم با تار با گروس میکنیم ولا نبلونه بشيء من الجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص دار مال نقص دار نقص دار شوها تكاد يدست خداؤه قادشش هم ينتوريه على إن سبعة الله غاليا حسيتوا من تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مثتم البأساء والضرا وزلزال سختيها بديها زلزالها وما طب کردن بقاطر ایمانشون میشار میذاشن نصفشون میکردن زندگی تخت میکن زندگی دوشماره ولقد خلقن الانسان افیکه با کد نکنی چون ازدواج میکنی بهشتی که توش میکن وارد بشید زندگی بهشتی تو باز بهشتش بکنی تو باز باغش بکنی تو باز مگرهش بکنی نی توقع نداشت که باشی لباس تیرانهی که بهتون بدن خسید نشه آلوده نشه پارچه ای آماده باشه دوخته شده باشه خیر کارخانه پارچه را آماده نمیدونی فرمیدونه بعد بحثت بازم کاهیم کرد از جمله مسائل که در بحث ابراز و باید گفته بشه بحث التزام و پایبندی خود و خانواده هست حجاب از صفت بسته بشه دستا باید پوشانده بشه عورت انسان پیدا نشه زندگی هم باید صفت مشکم بسته بشه تا چه آورتمون بیرون نیاد مثل شکلاتی که اگر توستش رو باز کردی هی مگه میاد روش این میاد وسطه میدازه این میاد یه چیزی بهت میگه لکدارت میکنه زیندگیت تو لکدار نکن محکمت کن روابط زناشی را باید محکم کرد نسوست این خیلی مهمه وقت ترس خدا شوهرت نمافت میخونه تقوای الله داشته گفتم شجاعت در پرخاش مید بنی کی گفتن کس رو برده. فرو بردن این فجاعات عقلیه هست شوهرت نماز نخون چه چش به محرم افتاد نه اینکه بگید شما چش افتاد به حقی نگاه کردی تو نمیدونم بنت فلانه تو حواست بود نه فراموشش آروم باش بهش رو بگو تقلا تقوای الله رو داشته باش از خدا بترس خدا رو بیاد داشته باش اینو ورد زمانتون بکنید نه ترساش نه تندید. التزام و پایبندی خودمون با نمازها و اذکار و هرچینی خانوادهمون تشویق بکنیم همیشه چون التزام و پایبندی سبب میشه که زندگی گفتم مثل یک شکلاتی بسته و پنام دیگه کسی نتونه باز بکنه و کسی نتونه روش بشینه بله این پرورشه عواطف هرچند که نمونه ها ما از پرورشه عواطف در سنت زیاد داریم من به عنوان مثال حدیث عایشه رو گذاشتم عایشه عزه عادت ماهیانه بود ه میتونه باه هم دستستری بکنه. به عنوان مرد، اون مردم باید بدونه توسیه و مردا. باید بدونه اون زن هم نیاز محبت داره نه اینکه حالا عذر ماهیانه داره نباید شوهر احترام و تدیلی داشته باشه یا نباید بغلش بخوابه اینطوری هم نیست. و اون به هم باید بدونه چون حالا عذر خته تو خونه باشه نه اینطوری هم نیست می زننا اگرز مجان م دیگه طرف میره بالا لباس خوشونم یهطره اطر بوی خوش و خونه و اینا دیگه طرف دیگر اینجوری نباشه. هم زن هممرد همونجا که رسوله صلی اللہ علیه و سلم آیشه میگوید همونجا در تحیل مسلمه مرا بوسی میزد در صورتی که روزه بود حسن که در حال روزه جوان من میشه چون شاید نتونه احساسات خوش رو کنترل بکنه آیشه هم رسول و میتونه خوش رو کنترل بکنه بحث, بحث و پرور باید احساسات سرورش پیدا بکنن و همیشه گل به همدیگه هدیه بدن برن 10000 تا گل هدیه گل قرن هر کس خوبی به همدیگه بدهن گل فقط پول نباشه حرفی اون صدقه ای باشه اون لبخندی باشه باور بکنید گفتم مرد میبینه پول لذتری خوشبخت ترین وقت مرد اون لحظه ای که لبخند تو صورت همسرش میبینه من از باب تجربه اینو میگم خش وقت برای یک مرد اون وقتی که لبتن تو صورت همسرش رو هم ببینه. این بهترین گله. اگر به مردتون برید یک کامییم گل یک میلیارد هزینه بکنی گل به براش اصلا احساساتش نهبرگیسه میشه نه پرورش می اصلا ترفیی دوست ولی اگر زن بهش گل بدی بله اونجا هست احساساتش شو بعد مردا تویه میکنین این کارو بکنن اگر با یک شاقه باشه. ولی که زننا خودشون گل باشن توقع داشته باشن گلی را بخرم بدن این از اول تجربه اتمیار هنوز بحث مونده که ما خطه شدیم یک بند از فلیتای خوشبختی مونذ اونم سازش با حقایق من نمیدونم اگر حوصله دارید تا این بحث درستو درن تو فردا بذاری برای باقی مباحث خب شاید میبرم تو 5 دقیقه تا 10 دقیقه بالبیشتر بل، بل، یا زیادش دیگه خلاصش بکنم سازش با حقوقای یکی از تذبیه های زندگی هست. مثل کلیل خسرحی. اِنَّ مِنَ الْغِیرَتِ مَا يُحِبُ, ما يحب, ما يحب اللَّهِ وَمِنْهَا مَا يُبُلُ اللَّهِ بعض از غیرتها خدا خشت داره، بعض از غیرتها خدا دوست داره. اما غیرتی که خدا دوست داره اونین غیرتی که برای خدا باشه، برای محرمات باشه. چون زنا میکنه کنه، غیرتش برد می میاد و سهارش دیگه زنا نکنه از خدا به دوست بازی میکنه میگه این کار انجام نده چون نماز نمی که میگه نماز بکن این غیرت خدا دوست داره ولی که نگه توروی شوهرش استاد گفت که زن نهی اگه از زن گرفتی داره من خط بکر من دیگه ندیش ناشی زن دیگه ما آتک با من دیگه مفتر زن این غیرتی که خدا دوست نداره و این من الغیرت ما یبقی الله و اما غیرتی که یبغض الله فالغیرت فی غیر الله خدا باشه در نصرت هوای نفس باشه هر نفسی میخواد شوهر مال خودش باشه مالکیت برای خودش میخواد ولی خب برخلاف میل خدا میل خدا بر اینه که اینجوری شرعی باشه نمیگم نمیگم دو دستی بری شوهرتون دست دختری دیگه بدید چون دخترای امروزی یعنی تحت خدا ندارن خیلی نه همه شد. الا ما رحمت رب بکر. خیلی ها وقتی که شوهر میگیرن زن دوم دو مثلا میشن سعی میکنن دیگه دور زن اول خط بکشن. سعی میکنن دیگه تموم بشه بره اون زن اول. یا زن اول این تلاشو میکنه. بازی ها زن اول شو شوهرشو که زن دوم تلاش بده امسال من شیش تا مراجعه داشتم اشخاصی اهل نماز دومشون رو طلاق دادن بدونید یادتون میارم بهتون میگم اینجا قرآن تذکره و نکاح هست و یمکرون و یمکر الله والله خیر ما کردی حیله کردی نیرنگ به کار بردی بدونید خداوند نیرنگش بالاتره این غیرتتون سبب نشه که زندگی را به هم بزنید اون زندگی که با رضایت خدا بوده حتما میگم این دلیل بر اینی که من تشویقتون بکنم زن دوم بشی یا زن اول بشی هیچ تشویق خدا هست زن اولی شدن ولی اینکه زن دوم شدن تشویق نمی کنم چرا چون مردها خدا نمی ترسن چون خیلی از زن هم هستن از خدا نمی ترسن همون که خیلی از مردها هستن مرد از طرف اینو عدالت میگونه به خاطر همین استخاره با خدا و استشاره با بزرگان بکنید پیش قدم وارد این زندگی میشید باز پشیمون شریک زندگیی دارید یک کسی داری که محبتتو نصف میشه و نقص من الاموال والانفوس و و والانفوس نقص در نفس ایجاد میشه شوهرتو نصف میشه گفت بقاطر همین تشویق نمی کنم شوخیراتم میارم توصیه نمیکنم زن اول پیش قدم بشه و توصیه هم نمی کنم. اون خواهر زن دوم هم بشه نفیحت و توصیه برای دین خدا میشه ولی که چون ما تام نیاریم، چون ما ظرفیتش نداریم، به خاطر همین باید آمادی داشته. آمادگیش رو داشتی، داری بفرمای. چون واقعا سخته. هر زنی هم برای خودش غیرتی داره احساسات عایشه که ام مؤمنینه غیرت داشت. حتی که رسول الله میاد غیرتشو کنترل میکنه، نکروش میکنه. حدیثو میبینی؟ عایشه میگوید روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم دوستان را قربانی میکنه، بعد وقت Ahhh... که ولی دوستان خرجت، حادثه اغلب توی یومان روزی نروحتش کردم، طرز لقد اخلفت الله من عجیب خدا در جودین آن پیردا، تختن جوان از جاهش را سرخ خدا به هتوده. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌مان عجایز طرش حمراه شرتن فقاهه صلّى انى روزحت و حبها و در روابط دیگه میگه حمکنان. رسول الله صلی الله علیه و آله ساغذشتت یک مهمی که من بهش گفتم چرا من گفتم این حرفو زدم و گفت من حبت تو خدا به امزاده تو رو نذار که حب شوهر منحصر به فرد شما باشه اون حبی در که در زندگی شراکتی نیاز نیست میشه و این امتحان خداوندیه که گفتید الا نبلونا بکم شیء من الجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات این امتحان خداوندیه و لازمه هم نیست اینکه رسول الله خدیجه را دوست داره را دوست داشته باشه هیچ وقت به ذهنتون نمیاد چون خدیجه را اینجا رسول دوست داره آیشه‌ رو دوست داشت. نه انس بیویت رسول سوال شد به کسی که دوست داره کیه گفت آیشه‌ گفت فقط کی گفتن پدرش آیشه‌نا این قرار بر این نیست که قلب من فقط ظرفیت یک محبت رو داشته باشه میتونه تحمل بکنه ولی محبت باعث پرورش بیابه این سازش رو با حقایق ما رنگش هم مشکی کردیم رنگش مشکیه تو وسطش هم رنگ سورتیه که بدونید تو باید گلش بکنید این حقیقت رو ما با دست پنجه باستم این حقیقت میاد ما گفتیم این فقط میگیم از به همون بحث تض تو زندگی که باید تحملش بکنیم خلاصه بحث خلاصه‌ی قاتمه بحث امروزیمون ازدواج سکونت استقرار امان و راحتی هست. آسایش و من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها منزلا الثياب لباسه که بطن ما پوشیم انسان باید به لباسش اهمیت بده بشوره باید به همسرش هم اهمیت بده هن لباسلکم لباسون لباسلهن لباس باید بدوزیم لباس و پارچه اعماله تحویل ما نمیدن لباس سازشه دوخته بشه زندگی باید بدودی باید بسازی با شوهر با بدی شوهر با شوهر با هر درد و بلایی که تو زندگی میاد باید بسازی زندگی یعنی سازش، فاشر باید ساخت، آماده تحویل کنه دیگه. و اون مرد هم که دو نداشته باشه، اگر میاد ازدواج میکنه، اون همسر گل و گلدون تحویل میگیره که فقط بوی خودت ادش بیاد. پرخاش نکنه، خیلی زنم عصبانی میشه، ناراحت میشه. من به عنوان مرد باید بتونم در مقابل اون خا و خاشاکی که میاد، باید بتونم بسازم. منم باید به عنوانی متانت باید داشته باشم. که منم باید بسازم، همونطور که زنم باید بسازه همسر به وصل قرآن بهشید، همسر به وصل قرآن مزرعه هست همسر نیاز به رقایت اهمیت داره چنانچه مزرعه نیاز به کشت داره نفعه حرف لكم فاتح حرفكم حرفه ان ناشئتم آخرین مکلب خلاصه بعد اینه که همسر به وصل قرآن صحبت رفاقت خیلی از مرگا و خیلی از زنان زن مثلا میان، حالا زن دوست دارم معمولا هم صحبت باشن، این مشکل ما مرداست بیشتر. با دوست شد من تحریش میرن، برای اون زن که خونه باید بشینه، باید تنها در دیوار رو نگاه این واقعا مدامه تو سردنش بر ما هست، خدا از ما عفو بکنه، واقعا ما مقصریم. خدا در قرآن اسم ازدواج میذاره وفاقت، میگه و از یا بنی روز قیامت انسان از زن و همسرش از بخشش و همسرش قرار می‌دونه چرا دو صاحبه و اسم ابو بدر را گذاشت صاحب رفیق ابو بدر رفیق قیامت در غار زنم ده زنم در زندگی رفیق انسان همدرد بشه باید پناه بیاره اون مرد به اون زن و اون زنم به اون, زن اون شوهرش بعد اون شوهرم هم گوش بده ولی ما مرد مردها این تحمل رو ندارن که بشنوین زاینی ظاهر تو درس رو من قسم من خودم بلند کن چقدر حرف بیدنید؟ چقدر سخم میگید؟ این قد فرصه این اتواب و سرزنش برسر زبان مرد میاد این واقعا دوی که بقاطر همید یوم یسر رو روزی که مرد ما ماها فرار میکنید از که فرار میکنید؟ اولین کسانی که فرار میکنید صاحبتی هست همسران ما همسران فرار میکنیم چرا؟ صرف زن چه مرد؟ چون حق اون زن رو ادا نشده من حق زن رو ادا نکردم اگر زنم مرا حلال نکنه، گذشت نکنه، عفوا نکنه جهنمیام روز قیامت عرق شرمی تو من با فرار بکونم روز عذابه اولین کسانی که من حقش رو ضایع کردم همسرمه، خانواده‌مه، بچه‌مه با خاطر همین روز قیامت روزی هست که انسان از همسرش فرار میکنه ما باید برحذر باشیم که روز قیامت شرم تا نشیم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله و